حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بده بلک هوادارته چون بلدی بخندی و چشم دل ببازیم بارش دل ببندیم ازوا که دلم سبزه هیچی ند توی دنیا از اوج موج شادی تا پردا و پس پردا بش با که قلب سبز هیچی ند توی دنیا از اوج موج شادی تا پردا و پس پردا سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی خوشین؟ سلامتین من فرشید و انافی اینجا راژیو پس برده شماری 944 امروز دوشنبه 16 همه آزرمای 1394 برو بریم چه خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه میکنین؟ با این همه برف و سرما؟ خبر خبرها خیلی سرچه داره شنیدتم خیلی سرما زیاد چه زمه امسال انگاه خیلی توپش پر همچین مختدر ظاهر شده اینه که موضوع بخوادتون باشین و دو تا چیزو سعی کنین این روزا نخورین یکی سرما یکی هم لیز نخورین راستی دانشجوهای عزیز روزتون مبارک باشه. وه‌ وه‌ وه‌ وه‌ چه گلایی چه بل بلبلا مگه میشه ما 16 آذر یادمون بره امروز 16ام آذر روز دانشجوه خوبی؟ استاداتون خوبن؟ خوب درس میدن؟ نمره به دستن؟ آره دیگه تا الان امتحانات میان،, میان ترمم احتمالاً دادینو دیگه قلق استادا دیگه بعد اومده بود دستتون دیگه. خیلی سلاما رو برسونین خدمتشون ها. خیلی سامی روز دانشجو ها یه چیزی برو همچین دانشجو پسند برو ببینم اینه دانشجو پسند بله سامی فکر کرده این دانشجو پسند البته دانشجو ها میتونن یه غیری بدن حالا بذاری خود غیری بدن دانشجو ها خود کمرشون باشه آها امینه حل ولی چیزه سامی جان دانشجو پسند باشه دیگه این خیلی چیز نیست خاطرات شمال محال یادم بریم این دوباره باز میشه بله خاطره های شمال محال یادم بریم بله خاطره های شمال محال یادم بریم من نخواستم روی صبح حرفهای خانم هومی را چیزی بگم ولی سامی جان این آهنگ مناسب دانشچوه واقعا مگه؟ دانشوها که میرن شمال اینو انگار رو گوش نمی کنن آه، نه خوشم اومد جبوه، با جب دانشوها با شمال رفتن و اینا هم که آشنا سامی ها. درست بله ایول ولی حالا یه مقدار همچی دانشوی ترم هم میتونی بری به مناسبت 16 حالا که روز دانشوه بلدی بری میشه همیشه پاسکر هر امتحان و ساده آه تو آخرای ترمی که واحدات زیاده این شد هر پیش استاد هی التماس کردی این جور واحداتو با بازم تو پاس کردی به به بازم تو پاس وقتی که ترم آخر ماز کو به چیزی بلد نباشی باید بری بمیرین دانش بودی اما محتمل تر از همیشه میگه که کاش میشد برداشت نمیشه گفتم که نه نمیشه خب هم موسیقی دانشجویی دیگه به هر حال تقدیم به دانشجو. اما امروز در ادامه بحث مدرنیسم میخوایم از نقش مدرنیسم در تعلیم و تربیت بچه ها بگیم ببینیم این پدیده چطور روی شیوه تربیتی ما اثر گذاشته پس لازم همینجا سلام کنیم خدمت همه پیش غراولان تعلیم و تربیت از مربیان مهربون کودک و معلم های زحمتکش مدرسه گرفته تا اساتید محترم دانشگاهی که بیشترین تأثیر روی شکلگیری شخصیت بخش اعظمی از ما گذاشتن و میذارن کارتون خیلی درسته به خدا برو بریم دوستان عزیزان خانم آقایون اون یادتونه یه سیل بزرگی چند وقت پیش توی ایلام را افتاد کلی خرابی به بار آورد یادتونه همون موقع رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کشور توی یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بودن که پاسخگوی خسارات و صدمات به بار اومده باشن بعد فایل صحبت‌هاشون یه کم دیر به دست ما رسید ولی خب دیدیم خیلی پرمغزه خیلی همچین بله اینا گفتیم حیف شما نشتیم اول یعنی متوجه میشین چرا من هر جا تو این ستاستانی که چندوز ذخیر بازید داشتم حتی مردمی که آسیب دیده بودن از این قضیه اظهار ظهار خوشحالی میکرد مثلا به نظر میرسید که خدا وکلی طبیعت هسته مثلا زمین و زمان این کاملا شسته شده بود یک تراوت دیگه گرفته بود همه بودها آب جاری بود یعنی ایشون با این روحیاتی که دارن جای رئیس ستاد حوادث غیر مترقبی سازمان مدیریت بحران کشور بعد می شدن ستید ستید رئیس ستید مثلا دوشواری نداریم سازمان گل ول ول کشور فکر آقا سیل اومده کل زندگی مردم رو برده ایشون اومده نشسته اونجا میگه مردم خیلی خوشحالن به به همه جا آب درختار شسته زمین ها ایشون با این رویات آقا پاسورد و با دو هم کل شهر رو ببره میگن مثلا شما نگاه خرابی ها نکنین شما نگاه کنین ببین چقدر هوا تمیز شده به به مثلا زلزله ام به کل منطقه خراب شد میگه من رفتم منطقه بازدید کردم مردم میگفتن خونه هاشو کلنگی بوده خودشون میخواستن بکوبن دیگه دوباره به سازن و اینا الحمدلله دیگه زلزله اومده لازم نیست برای کوبیدن خونا ها کنن در این حدی یعنی. جان. سلام علیکم خیلی تشکر کنم از این آقای مدرن یا این خانم مدرن که این اپ مدرن رو درست کرده ما میتونیم برای شما پیغام بذاریم میتونیم صدای شما رو, رو روی آیفون بشنویم بله. خیلی ممنونم مدرن تونم مبارک مرسی خیلی فرهاد مدرن ای فرهاد مدرن میخایم هزار تا نه نه نه میخوایمت 944 تا فیلم مونده تا هزار تا Yes. متاسفانه دوستان از جنوب غرب کشور خبر میرسه که دوباره آنفلانزا چندین نفر از هموطنانمون رو به کشتن داده و وزیر بهداشت هم در مورد این مدل جدید آنفلانزا اینطوری گفته نه اون ممکنه به اصطلاح ماه تر بشه نسبت به سال قبل به نظر میتونید که همین اتفاق هم افتاده. بخصوص مواردی که از اون طرف مرز از مسیر استان سیستان بلوچستان و کرمان این وارد کشور بله دیگه تصادفات جاده ای گرد و غبار و انواژ نه پارازیت و آلودگی و اینا گل بود به سبزی آنفانزا اونم از نوع خوکی اونم به قول وزیر بهداشت وحشی بیترویتش هم آراسته شد. والا ما که دیگه دهنمون کف کرد از بس از این عوامل این رویدادها ها درخواست کردیم، تمنا کردیم التماس کردیم، خواهش کردیم بیخیال مملکت شد چون میدونید که مثلا اگه این اتفاق توی یه کشور اروپایی افتاده بود الان نصف قاره رو بسته بودن داشتن عملیات ریشکنی انجام میدادن منطقا ما دیگه سر شدیم از بس از این بلا سرمون اومده والا به خودم سلام فرشی توقوم چه برفی اومده بغوم. خیلی خوشگله بایی باورت نمیزه به بدبختی ماشین از پارکینگ دارا خیلی میسته خیلی عالیه خیلی خوشگله خیلی هم جازون خالیه آخه. فقط یه چیزی من دارم منجمت میشم چون لباس گرم نفوشدم دیرم هم شده. فقط یه بوخ میزنم به افتخار خودت بزنشو ببن بهبه بهبه بوغ از غم داریم ای بابا علی او به به ببین چه میکنه یعنی شنونده داریم یعنی در حد بوندس لیگا فدات عاشقتونم عاشقتم عاشق تیم همه با هم برو حالشو ببر خوش بگذره لباس گرم به پوشتمت گه شنونده بعد اینجوری باشه به انرژی ایول انرژی گرفتم اصا بله این برف و بارون و اینا برف بیشتر البته اومده در جای مختلف کشور و همطوری ما اکسا و فیلم امروز میدیدیم و به نظر ما دیگه این برف زورش همین بود دیگه البته خوب نشسته بود خیلی جاها که من اکسا رو می دیدم. این برف برفباری که اومده توی ایران فردا هم سمت مشهد اونورا آخرین تکونای خودشو ظاهرن میده و دیگه تا آخر هفته فقط سوز و سرما داریم و بست دیگه میدونید توی این هوا و با این برفی که نشسته فقط پرنده ها و سگا و گربه ها برای پیدا کردن غذا حسابی به مشکل برمیخورن اینه که دیگه خواهشن جون فرشیدین چند روزر یکم هوای این زبون رو داشته باشین دیگه. یه غذای چیزی دونه چیزی برابر دستون میرسه بهشون برسونین آما, اما هرچی شمال ایران هوا برفی بود جنوب ایران به خصوص شهرهای بندری درگیر باد و طوفان بودن امروز امروز شدت باد به حدی بوده که بندر قشم و بندر عباس و بندر هرمز کلن تعطیل بودن تا آخر همچنان قرار ظاهرا دریا مواج و متلاتم باشه اینه که بندری های عزیز هم این چند روزه به دریا نرن و به خونواده برسن که دریا موجه بعد جورم موجه دیگه بعده بمونين آره رفتيم با مافي دریا دريا دوستا درم ماوالا دخت خال عروس ميگاني خيلي ملوسه يلا يلا يلا دوستا درم ماوالا يلا يلا يلا چن تو دی که دی شو تو که دیگه چی شنیدی کشتی مارو همین حال و هوای دیگه میخوام درد دل سامی رو داشته ها زن میخواسته اما بریم سراغ رادیو پاسورده 944 امروز دوشنبه 16 آذر 94ه اونایی که تکرار برنامه رو میشنون سه‌شنبه 17 آذر ما ماه میشنون شما هم که دانلود کردیدین برنامه رو و دارید میشنوید خب ممکنه هر موقعی از سال صدای ما رو بشنوید خیلی مخلصیم این هفته موضوع ما مدرنیسم البته هفته گذشتن راجع به مدرنیسم حرف زدیم دو هفته است راجع به مدرنیسم حرف میزنیم و امروز میخوایم بریم سراغ تعلیم و تربیت مدرن از دوران ترکه و چوب و فلک تا عصر تربیت علمی فرزند از زمان تشکیل نطفه بیاام شماره 944. بدانید و آگاه باشید که درست است. نظام تعلیم و تربیت مکتب خانه‌ای و قدیمی بر چوب و فلک بنا شده و از ریشه غلط بوده اما فراموش نکنید که امسال پروفسور سمیعی و دکتر حسابی و علام ده خدا هم در همین مکتب خانه ها فلک شدند پس اگر عدم موفقیت خود در امر تحصیل را به گردن سیستم آموزشی سنتی و همان چارتا ترک و چوبی که در مدرسه بر کف دستتان خورده میاندازید اندازید همانو از خودتان را گول زنندگانید. جمعی از بابا مامانشون تو مدارس مدرن و نمونه مردمی ثبت نامشون نکرده ها بو تو مدرسه دولتی هر روز از معلم و نازم کتک خورده ها بو با این حال درس و خونده و برای خودشون کسی شده آیه رادیو پس با فشید. سلام من علیکم. از مشتری های دائمی برنامت هستم بهده. فقط یه موضوعی مخواستم بگم جان. اونم اینه جان. که به نظر میاد به خاطر مشکلات ای که دولت آمریکا داره بله. کم کم داره رادیوهای برومرزی خودش رو تعطیل می‌کنه این واقعاً این قضیه در مورد رادیو فردا هم قرار اتفاق بیفته بله. به ما بگید که حداقل های شما در یه سری اقدماتی انجام بدن و چه سری مشکل رو حل کنند. چون آه. وجود رادیو فرداد برای جامعه ایران واقعا یک نعمته حسین هستم از هوم تهران خیلی متشکرم حسین جان از این دغدغتون ولی حالا اگر هم حالا فکر کن اگه همچین اتفاقی بخواد بیفته اصلا شنونده ها چیکار میخوان بکنن مثلا پول بزنین جمع کنی پول بفرستیم برامون مثلا تو این مایا ببینید ما چه بودجمونو ببین مستقیم از خود شخص آقای هاشمی رفسنجانی میگیریم این تموچو رفت من رادیو فردا رو نمیدونم رادیو پاسوردا وای آقای رفس رفصن. مال رفسنجانی از اول گفتیم رادیو پاسوردا مال رفسنجانی مثل خیلی چیزهای دیگه که مال ایشونه ظاهرا فکر نکنم ایشون کسی بودجه داشته باشن حالا حالا اینه که خیالتون راحت تا رفسنجانی هست مام هستیم به خدا حاجی ای شنیدی فقط یادت نرا حقوق نوامبر بچه‌ها هنوز پرداخت نشده آره دسامری ما تموم شد سال ایدی هم یاده نر آغربونه دست <س soundtrack> آم ما بریم سراغ موضوع امروزمون تعلیم و تربیت مدرن توی دنیای مدرن یکی از بزرگترین دقدقه های این تربیت بچه هاشون. چون علم ثابت کرده تربیت بچه از همون مرحله تولید نطفه باید شروع بشه اینه که از چند ماه قبل از اقدام شب خیرامیز عملی برای تشکیل نطفه فرزندشون والدین رو میارن به زیر رو کردن کتاب های تربیتی، آموزشی، آمیزشی همه اینا رژیم های غذای خاص و در شب خاصه عملیات شب بخیر اصلی هم از صبح آقا پدر خانواده خودش میبنده به مکمل و ویتامین و اصاره یعنی علق و کلی هم میشینن دوتایی مدیتیشن و یوگاه میکنن جسم و روح هر دو انگام انعقاد نطفه کودک کاملا آماده و توپ توب. دیگه مولادرز نطفه بچهشون نره مراقبت های دوران بارداری هم که داستان خودشو داره خانوم از ماه اول تشکیل نطفه تا روز زایمانش یه جوری رفتار میکنه انگاه اورانیوم غنی شده تو رحمش داره حمل میکنه بعد از همون ماه اول برای محتویات داخل رحمش باخ و مدزارت پخش میکنه از صبح تا شب با رژیم مخصوص و های غذایی شبانه روز مشغول حراست و تقویت و مراقبت از جنینه اینجوری میشه ماشالله بچه دنیا میاد 6 کیلو وزنشه ما چقدر بودیم 3 کیلو 4 کیلو این وضعیت بارداری و زایمان تو دنیای مدرن قدیم ما اینجوری نبود که آقا زن و شوهر نمیفهمیدن که ای بچه درست شد که ای دنیا اومد مورد داشتیم خانم 8 ماه بوده فکر نفخ آشیه که خونه خارشو هرجنا کرده چیکمش باد آورده به خدا اینم بگم اینم بگم یادم این مال اولش بود بعدش هم ما آقا توی سیستم تربیتی مدر اصولا به بچه میگن از گل نازکتر نبواد گفت یعنی دیگه بچه بود مثلا جنایت در حق کودک همسایه مرتکب شده باشه که بهش بگن چون برو تو اتاقت و به کاری که کردی فکر کن خوب فکر کن فکر کن باب زده سر بچه همسایه رو شیکونده کل شیشه ها پایین دم یه گلبر هم وقت برو تو اتاقت رو راضی به کاری که کردی فکر کن زمان قدیم بچه تو خیابون موقع راه رفتن پاش پیچ می‌خورد بدبخت می‌افتاد زمین باباهای با فوش و پس پسگردنی بلندش میکرد. دیگه وای به وقتی که مثلا بچه شیطنتیم میکرد آقا اصلا کمربند اون دوران کار دومش نگه داشتن شلوار روی پای پدر خانواده بود نقش اصلی کمربند تربیت بچه ها بود اصلا یه وسیله آموزشی تربیتی محسوب میشد. آقا حتی تو بعضی لوازم و تحریر هم تا کمربند می‌فروختن اون موقع جلال بمیره اگه دروغ بگم به جون شراگیم ماشین مشتی مندلی ارزون و بیمعطلی ماشین مشتی مندلی نه بوغ داره نه سندلی بابا یعنی مامسی این تاب داره خدا وکیلی ها کی تو این کار میکنه که تو زدی بیرون نشی الا می میخوایدیم تو خونه تی دل مادر دلم اداره باترایی که من استراحت میکردم خسته ای با. خسته باش میشو داشین زمت صنعتی زد زلو هم میزدیم میرفت زلو الله ملت خواشون تی پشت میزه ما میشن پشت شیشال میکنن وای تقریبا برف قشنگه مایه بیتاره دارم اون کف خیابونه ای باتسمیم تو این خیابون سگلرز بزنیم ای صروتای ماشین و بسته این لیست کردناو زم کنیم بابا به بنیم یورو این یارو میره سلام داشم کدا به سلامتی ستخندو زیر پل نیگه بیا بیستو من با... زیاد چه زیادی داشتم تو این هوا والا کم هم هست دیگه بالا و پایین داره میریزه دیگه چرا حالا داریم میل ارزی شمو خیز شدی؟ آه ماشین رد, رد شدن آب پاچیده خوا با سادی جناق یابون ایتاکوتونه میزنی واسه دوزار خیست میشه دیگه بیا بابا بیا والا بیا 17 بده 17 بابا 16 بده بریم دیگه. آی بابا باز هم میگه نه خب تن میخوای بدی داشت تا هشت 8 تومان بابا برو کنا شیشه رو بلام بالا برو بابا خدا روزیتو داید زاید دیگه بده ما صدقه‌مون رو دادیم بگه دا اولی بلام کن بابا رو برق میگیره ما رو تی باتری قلمی بطای کرایه ها رو تو این دو برابر میکنن و یکی مثل ما با انصاف میشه دو برابر نمیکنم زیه نمه میکشه روش ملت این میشه. میشه میبا کنسه باد و بورانی هم شد یعنی یارو هم بد زوری داشت میلرزید و بدبخ این کاش سوارش کرده بوده سک تو زرر با بند خدا حلتمند نداشدیه یكی نیس مگه آخ دشتی یه ناحسابی داری خالی میری حالا سر دو هزار كرایه یارو رو توی این نمیکنی از این مراما نداشتی دشتی ای بابا با این بچههای خط میشینیم اینجوری میشیم بیرهم و اینا دند اقبم نمیشه گرف افتادیم تو ترافیک هیچی دیگه علا. تا صبح خیافه یارو جلو چشم ماست دیگه د هنمهن صافه ای بابا زم میریم آقا، بزن بریم میریم توی اوت و این سرمو تب مبتلا با این باقیات سالاته بود بریم آقا، میریم. زم سون خدا سرد کرد دمیش کرد، زم سون خدا سرد دمیش کرد، زمینو مسیح کرد دمیش کرد زم سون خدا سرد کرد زمینو مسیح کرد دمیش کرد اونو که بلگرد دمشگر اونو شقی که بلگرد دمشگر سلام فرشید سلام فرشید من اگر تمام عجدادم و دوت کنم و جمسم بیا خونه ما خوب. به مجرد اینکه منو ببینم و ببینن که ادواما برداشتم اصلاح کردم و شوهر ندارم با توجه به سنم البته احتمالا همهشون درجا سکته میکنم و تموم میشن و بقیه هم نمیبینن یه چیزی دیگه نمی‌فهم من اصلا مدرنیم همین میمیرن تموم میشه بله مرغم از اون به تا خدا رو رحمتش کنه همه رفتگان شما رو چند سالتونه مگه حالا به هر حال اجدادتونم خب حق دارن عصبانی بشن با این کارهایی که شما می‌گی والا البته حالا بی ارتباط با این مسئله بلا خیلی کلی میگم پسر دم بخت آماده ازدواج هم زیاد هست اینجا یعنی فقط کافی چشماتون رو شما باز کنین دیگه یعنی چیز گوشاتون رو خوب باز کنین خودتون متوجه میشین دیگه سامی خواهی چیزی بگو دیگه همجی بر رو بر من نگاه میکنین اه هم برداشته ازدواج هم نکرده قرار. بله این هفته گفتیم ازتون خواستیم که بهمون بگین اگه یکی از اجدادتون همین امروز از اون دنیا برگرده بخواد یه هفته مثلا باتون زندگی کنه چه چیزایی ممکنه باعث ناراحتی یا تعجبش بشه بعد مثلا میدونم اینترنت اگه ببینه شما یه وسیلهی دارین باش میتونین با پسر امتون اونور دنیا صحبت تصدیری داشته باشین آیا فکر میکنین جون سالم به در میبره ازم میگیره قضیه چیه؟ یا مثلا اینکه که بزرگتر وقتی میان رد میشن کچکتر ها لنگشون رو که جمع نمیکنن هیچ تازه میگن مامان جون یه لیوان آبم هم واس من بیا نه نه نه نه آب نمیخوام آب پرتقال لطفا نه چی کار میکنه اینا رو ببینه لطفا اجدادتون رو این هفته دعوت کنید ببینید که با این اتفاقات دنیای مدرن چه شکلی میشن چه اتفاقی میفته چی میگن حال کلاً امروز خطمون بندریه خط سامی هم افتاده رو خط بندری دیگه خط رو خط میشه ولکن نیست بیا بیا بیا بیا ای گوشا شما زندگی کنیم دیگه برنامه نمیشه دیگه آقا یکی بیاد منو بگیره حالا بیا بیا بیا همه دست بالا بندری بالا آه همشو؟ شو؟ ای بابا ولش کن تازه داشتم گرم می‌شدم سامی جان. شهین و بهمن از جکسونویل فلوریدا، سفتر از خونه اکبر میکروفون طلا، احمد شیرازی از انگلیس، بهار از مونترال، بهزاد از روتردام، اردشیرخان یارو قدیمی پاسپورت از پادستاران، اسیو عباس، عباس معمار دوستاره فرشید کارخانه کالباس. بهزاد از یزد، تو راهی و هدیه از رشت، عمو از تهران، پوری از تهران. دگوری بگوری از غانغان بیب بی بی. این چیه اینا؟ بعد دکتر تناسولی متخصص قلوه مجاری و لوله های ادراری شهر با صفحای شاهی قایم شهر سعید ستاره از شیراز علی پایلوت از تورنتو نوید و ترگل و سهل از اسفهان سام از تهران امیریه رضا خان ابن عباس خان ابن عبدالی خان از مندر گناوه پارمین و پارمیدو از کرج شاطلای تنها پا منقل و زغال ناب بلوت. وضعیتی اینا بر بچهان که امضا کردن پای برنامه راژیو پسفردارا در اپولیکیشن رادیو پسفردار بعد ایمیل دادن رانا از سوئد گفته که فرشت خان سلام پسرای مدرن زمان جوانی ما دهی هفتاد دهی هفتاد میلادی بر رسم هیپی های اون موقع مواشونو بلند میکردن مادر بزرگ من سری تکون میداد میگفت خداوند ها زنم کن طاقت مردی ندارم حالا دلم میخواست الان میومد توی یکی از این پارتی ها پسرها رو میدید با زیرابروی برداشته و موهایی سیخ سیخ چه غیر و غمبیلی میدن رعنا خانوم از سوئد این ایمیل رو دادن بعد هدا هم گفته سلام فرش نرفی عزیز لطفا شما شماره تلفن و ادرساتون رو تو این کانال تلگرام بزارید هر روز تونتون میخونید فکر میکنیم چیزیم فکر میکنیم چیزیم مامی فهمیم ممنون از صدای دوستاش نمیده آخه ممنون از خودتون چه چه میذاریم تو کانال تلگرام چه ممنون خیلی متشکرم این گفت که از صدای دوستاش نمیده من اینجوری شد اما اصلا یه دفعه اصلا تایید خالی شد وای نه وقت نداریم، وقت نداریم. بریم با زندگیمون مون همه رو هوا پس فردا ات رادیو ایمیل ماست دو صف چهارصد بیست و یک پنجاه و دو صف چهارصد بیست هفتصدو سیو سی ماست در فیس بک گوگل پلاس ساند کلادی اینستاگرام میتونید ما معرفان کنید. بر کامنت بذارید. کانال تلگرامی ما میتونید بهش بپیوندید و اونجا سعی میکنیم حتما این راهای ارتباطی پر رادیو پس فردا د براتون بذاریم که من اینجور تونتون میخونم نمیتونید یادداشت کنین بتونین با ما در تماس باشین حالا یه بار دیگه تلفن ها رو میگم دو سرف یازده سه اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن دو سرف چار سد و بیست و و بیست و شش بیست و یک هفتاد و و الو گیر کرد, یعنی چی گیر کرد؟ این گیر کرده الان همه چیمون آقا گیر کرده الان من باید تا آخر برنامه همینجوری یتک حرف بزنم یعنی نه موزیک داریم دیگه دیگه نه تلفن داریم دیگه نه هیچ چی نداریم الان هیچ ا دارید آینا قولا دارید همه چی داریم الان یعنی نه با بابا این روش باب دوباره خود ادری استارتش کنیم سیستم لامصب آقا این چه زن فیل شد که این میگه فیل دوباره آقایون فنی خانم های کمک ما گیر کردیم اینجا همه چیمون گیر کرده بساتی داریم ما بذاره حالا که گیر کردیم بذار ازار من از کامنت های شما بخونم ها؟ کامنت که میشه خون که والا به خدا اه... بهاره تو اینستاگرام گفته که چرا اموات همین الان های مادر بزرگ 80 ساله ای من بیاد پیشم بشینه سرشو بندازه به گوشیم خودش سکته میکنه که چه چیزا تو این دنیای مجازی نمیگذره. ببین چی داری مگه بهاره تو گوشیت. رفرش ما ببینیم خب. رفرش برام بر رفرش بر. یا یادت نره من منم چند تا کلیپ خفن توپ دارم برات میفرستم. میگم هاله سامی چی سامی ببین چه چیزا. حالا میگم میفرستم برات. بفرست یا یادت نره. سامی میگه که گیر کردیم ولی خب میتونه یه جوری سامیه دیگه حال سامی میتونه همیشه میتونه بریم سراغ خانم سبا کمالی از به که بعد از اظهارات صدف تاهریان در مورد بعضی پشت پرده های سینمای ایران این بار خانم سبا کمالی که دست غذا، فرق و تحصیل دانشگاه سینما و تاعتر هم هستن سر درد و دلشون باز شده ببینیم ایشون چی میگن من یه مثلا گرفتار دشمنی های شخصی شدم ام. که به خاطر همون ها بود از جانب من که هر یه نایی که گفتم 5 سال منو شوت کردم به یه سمتی مثلا چی بگم بگم فنان تأیید کننده ای که خیلی رو منتسب به وزارت خونه ای میکنه فقط سه سر به زور میخواد وارد خونه من بشه و من با فوش ناموس اونش کردم از این موارد هزاران مدل وجود داره اونقدر زیاده که واقعا هفتاد من مصنوی میشه و هنه های ما صرفا ملعبن افنا تطمیم گیرده نیستن تصمیمات ها که آدم های میگیرن کسانی رو انتخاب میکنن که به دردشون بخوره این کاره باشن مم. جزم و روحشون کشش این مسائل رو داشته باشه و هر نمیتونه بله ظاهرا این قصه سر دراز داره و مدیران شرکت های فیلمسازی که معمولاً آدم‌های دمکلفتی هم هستن خیلی دوست دارن نقش دون رو توی دنیای واقعی بازی کنند. کن طرف چقدر برنامهش فشرده بوده ساعت سه صبح اومده در خونه طرف می‌خواد به زور یه پروژه مشترکی رو با این خانم کلید بزنه البته پروژه کاری بوده فکر بد نکن اصلا نه اصلا فکر نکنین بر حال در عرصه سینما ما مدیران دلسوزی داریم که انقدر در کارشون غرق میشن انقدر غرق میشن که زمان و مکان دیگه میدونیم براشون معنا میشه 24 ساعته در حال خدمت رسانی هستن. البته خانم صبا در ادامه گفتن که حرفشون به این معنا نیست که هر زنی تو سینما نقش گرفته این کار بوده این به این معنی نیستش که همه ی کسانی که کار میکنن خوش دارن نه من به همه این توهین رو نمی کنم ولی بله 70 درصد متاسفانه آلودن بله. این چه که ارزشمنده اینه که این شرایط تغییر کنه بله به هر حال اینم صحبت های بازیگره بازیگر زن دیگه بود این بار از داخل ایران که شاید کمتر از خانم صدف تاهریان وصله بی استعداد بودن و تحصیلات سینمایی نداشتن و جلب توجه رسانه های اونوری, رو اونوری کردن رو بهشون بچسبه قابل توجه کلیه علاقمندان به هنره بازیگری مؤسسه فیلمسازی برادران هنر دوست، از کلیه خواهران خوهران علاق به هنره بازیگری دوت به همکاری می نماید. گرفتن نقش اول در پروژه های بزرگ تلویزیونی و سینمایی و امکان بازی در مقابل چهره های محبوب و ناماشنای سینمای ایران استخدام فوری به عنوان بازیگر بدون نیاز به داشتن رزومه و سابقه کاری و انجام تست های خسته کننده بازیگری پجربه کار در محیط فوق و گرم و صمیمی زیر نظر برادران هنر دوست و پرداخت اضافه کاری و پورسانت علاوه بر دستمزد مندرج در متن قرارداد با توجه به میزان تلاش و قابلیت های شما شایان گونه ذکر است استخدام و انتخاب بازیکن صرفا مخصوص سنین 18 تا 35 سال بوده و اولویت استخدام با عزیزانیست که قدی بالای 170 سانتی متر داشته باشند کلیه متقاضیان قبل از مراجعه و مصاحبه حضوری لازم است پنج قطعه عکس تمام رخ نیم رخ قدی از روبرو، قدی از بغل و قدی از پشت را با رزولوشن بالا، جهت بررسی های فنی و کار به آدرس ایمیل هنر دوست@ ارسال نمایند پذیرفته شدگان جهت عقد قرارداد می توانند در ساعت اداری به دفتر این شرکت و یا در خارج از ساعات اداری به منزل سردار هنردوست مدیریت محترم این موسسه مراجعه نمایند. موسسه فیلم سازی برادران هنر دوست را مطمئن به سوی بازیگر شدن شما. ما از خطخواهی آدمی است که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باش باشد کامران ملک عزیز سلام سلام سلام جان سلام همگی برو که بریم پس. دیشب آخرین مهلت برای پر کردن فرم تواضع شرکت در 34مین فیلم فجر بود که لیست نهایی فرشته امروز منتشر شد کلا 38 فیلم تواضع شرکت توی جشنواره رو دارن که از جمله میشه به ابراهیم حاتمی kia با بادیگار اصفهانه وارد می شود مانی حقیقی دراکولا رز در عطاران شرکت امسال محمد سرجادی با فیلم تمرین برای اجرا و کیومرث پوراحمد با فیلم کفش کفشهای امکو که از غایبین این سالهای جشنواره بودن تو لیست منتشر شده اسمشون هست محمد نیست. رحمانیان با فیلم سینمایی منم کد امثال حضور داره مسعود کیمیایی هم فرمو برای تازه‌تر فیلم شنید قاتل اهلی پر کرده اما اعلام شده ممکنه فیلم به جشنواره نرسه اما یه فیلم من فرم پر کرده که بیشتر شبیه شوخیه تا درخواست شرکت تو جشنواره کدوم فیلم مالکیه فیلم عاشقانه های دوست داشتنی به کارگردانی محسن امیر یوسفی این که هم شرکت کرده بود درسته درست اصل هم شرکت داشت ولی کنار گذاشته شد بعدش هم که از نمایش عمومی جلهگیری به عمل اومد اما امسال دوباره امیر یوسفی تعاضد شرکت داده که فکر کنم یه جور اعتراض به توقیف فیلمه حالا دیدی یه وقت قبول شد دیگه به قول معروف یه سیبو بندازی بالا هزار تا چرخ می‌خوره تا بیاد پایین حالا هم 999 تا حتما می‌خوره دیگه <تصفح> خب این از سینمای این ورا آب چه خبر از سینمای اون ورا آب کامرا خب برای تکلیف دوبر باید بگم که این هفته هفته سبومه که فیلم هانگر گیمز یا بازی, بازی های گرستنگی با عنوان فریضاق مقلد دلات قسمت دومش اولش پارسال اکران شد صدرنشین جدول باکس و همزمان داره تو 92 تا کشور اکران میشه که تا اینجای کار بیشتر از 500 میلیون دلار گیشه داشته از فیلم های پرفروش امسال. بسیار ممنونم ازت کامران عزیز با خدافزی میکنیم تا فردا و بخشی از ساند یا موسیقی متن این فیلم رو میشنویم که کاریس از جیمز نیوتن هاوارد. لطفاً شب خودتون بخیر. با سلام بیستو دوشنبه شب را ضمن ابراز وحشت از دستگیری پنجاه نفر حامی تفكر داعش در کشورمان با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته آغاز مینمامیم پافشاری حسن روحانی در سخنرانی روز دانشجو بر لزوم استلال دانشگاهها و سوال ناظران از ایشان که ای منظور شما استقلال دانشگاه از گروه های فشار دلواپسان نمایندگان مجلس از اصغر قبال و دیگر عزیزان بی خیال وقت تو تلف نکن <تصفيق> تاکید باراک اوباما و رئیس جمهور آمریکا و بر غلبه جهان بر تروریسم و سوال کارشناسان که الان یعنی با حضور داعش و بوکو حرام و القائده و طالبان و 600 تا گروه آدمخوره دیگه شما افق روشنی از غلبه بر تروریسم در برابر دنیا می‌بینی؟ و بازداشته کادر درمانی متخلف بیمارستان خمینی شهر به خاطر کشیدن بخیه های چانه یک کودک به دلیل نداشتن پول و خوشحالی اصحاب رسانه از این رویداد با این مضمون که اگه ما فشار نعه بودیم الان متخلفین داشتن بخیه های کودک بعدی رو هم میکشیدن سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل سلام. فرماندهای پلیس نیروی انتظامی گفت: با توجه به قوانین جهانی بیشترین کاربران شبکه تلگرام در ایران هستند. این شرکت باید اقدام به انتقال سرورهای خود به داخل خاک ایران کند. در همین رابطه یکی از کارشناسان مجازی کشور به خبرنگار ما گفت اینکه مسئولین عزیز کشورمان برای فیلتر کردن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها دنبال بهانه هستند و بی‌بهانه آنها را فیلتر نمی‌کنند نشان دهنده پیشرفت آن است با توجه به این که در شرکت تلگرام تا کنون هیچ علامتی از اساس کشی و جمع کردن وسایل برای انتقال به ایران مشاهده نمی شود، خوشبختانه به زودی این اپلیکیشن هم فیلتر شده، راه نفوذ تلگرامی به کشور بسته خواهد شد، پایان مشروحه اه چیزه بایسته باید این جمعه رو هم بخون بیا اینم بخون اینه اینه اینه این پس پلیس فتا آره. این میکروفون تلا باید آره باید این پلیس فتا حواظش به همه چیز هست باید خطرناکی بخون ببخشید این کارشناس در پایان از خدمات و تلاش پلیس فتا تشکر کرده برای این پلیس آرزوی موفقیت بیشتر کرد. پایان مشروع اخبار. بله همانطور که میدانید امروز روز دانشجو بود و به همین مناسبت همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به دانشگاه علامه تبا طبع رفته بود تا از تریبون آزادی که در دانشگده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شده گزارشی تهیه کند. خواهش میکنم به گفتگوی زبط شده بنده و همکار گرامی هم در این رابطه توجه فرمایید همکار گرامی به که سخنانان این تیبون آزاد چه کسانی هستن همکار گرامی همکار گرامی آقای زاده و آقای نجمتی سخنانان جلسه بودن که از بله. با توجه به جفت سالونی دو نفر اصلا نیومدن ای همکار گرامی چه خبره آخه اونجا چرا نیومدن همکار گرامی دانشجو داخل این سالن با هم درگیر هستن و بعضی از گروه هم وارد اسپالون شدن که میخوان جلوی برگزاری این مراسم رو بگیرم آخی یعنی چیمایی این مراسم مجوز نداره همکنه یه رامی آخی والا منم از یکی از این آقایون تارسیدم ولی ایشون گفت ما هموجا بذاریم خب. که هر مراسمی رو به هم بذاریم، کاری ندارم. خاصه نباشه چی شلوخ‌خلوق. الان دقیقاً چه خبره همکار گرامی؟ یه کمی فضا رو برای ما توصیف میکنی بیشتر لطفاً؟ بله همکار بل. گرامی. هر دو طرف در حال جوار دادن هستن. آخ. <متحن> چش... اه... <متحن> <متحن> هم چی شد؟ چی همکار گرامی؟ چیزی به اسابت کرد؟ الو. همکار گرامی. الو چی شد؟ همکار گرامی، سلام عزیزم. گاز فلفله تو باز الان واقعا ببین همکار گرامی اینا با هم فرق دارن الان دقیقاً کجا داره میشوزه شما همکار گرامی همه جام داره میشوزه ای با خب پس گاز فلفله همکار گرامی سیگار فراموش نشی دود سیگار جواب میده برای گاز فلفل ای بابا ای بابا بله چه خبر شروع چی شده با... بله با هم از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدام با این دیگه گزارش زنده نیست من نیرام چه صرفهاش من ضبط کردم بلبل چرا ادیت نکرده این صدا ها رو قطعش کن قطش قطعش کن بدیم من فکر کنم اگه یکی از اجداد ما برگرده 24 ساعت تو خونه های ماها در حال حاضر تنهاش بذاریم خونار با آتش بکشه فکر کن مثلا نه با گاز میتونه کار کنه نه با فیر میتونه کار کنه نه با میکان میتونه کار کنه تلویزیون براش عجیبه زب هر چی که داریم هر چی که داریم براش عجیبه فکر کن مثلا آتش خونه آتش بگیره اگه 24 ساعت تنهاشون بذاریم شوک میشن خب آ چه کاریه این همه تلاش کردی با از 200 سال 100 سال پیش اجداد بزرگو در از عمق تاریخ اینا راه کوبیده اومده بیچاره شما بچه‌ها میگوی پاش همه با هم بریم بیرون تو خونه تنهاش بذاری یه هنیش منم من هم جایشون بودم خونه رو آتیش میزدم اصلا خودم منطور نه به صورت صحوی کاملا عمدی این چه باز برخورد با جد بزرگی آخه من نمیفهمم اما خانم آقایون شما میدونید که یکی از دقدقه هایی که معظم له رو از خواب شب هم حتی انداخته همین علوم انسانی و تدریس اونا تو کشوره ایشون تو چند ساله گذشته هی چپ و راست رفته و اومده یه فوشی به علوم انسانی داده اما دیروز پری در راسته فرمایشات معظم له و از آیران برای مدرن شدن سیستم آموزشی کشور به سلامتی اعلام کردن رشته انسانی رو هم از همون مقطع دبیرستان از سایر رشته های ریاضی و تجربی جدا میکنن و فقط توی مدارس فرهنگ تدریس میشن کلن اسم مدرسه فرهنگ هم که میاد آدم یاد جمال بی مثال دکتر حداد حد عادل میفته همجوری یه دفعه پر بی هم نیست البته دیگه چون می‌دونید استاد حداد سالها پیش یه روز رفت پیش معظامله و از شیطانی بودن علوم انسانی برای ایشون گفت و معظامله هم تحت تاثیر قرار گرفت و در حالی که از شدت شیطانی بودن علوم انسانی برای حال از شدت این شیطانی بودن این علوم اشک تو چشماش جمع شده بود یه زمین تو شمال پل ستخندان تهران هدیه داد به ایشون که بره توش مدرسه فرهنگ بسازه این مدرسه تأسیس شد استاد حداد توسعهش داد الان مدارس فرهنگ خصوصی مال ایشونه منتا از همون سالها یه سری مدارس فرهنگ دولتی هم خب تحسیل شده الان ظاهرا قرار بچه که میخوان علوم انسانی تو دبیرستان بخونن باید برن تو این مدرسه ها مشغول بشن اینجور که بوش میاد عزیزان میخوان به صورت پایعی و زیربنایی شروع کنن به تربیت نسلی از جامعه شناس ها و روزنامه نگار ها و وکلا و سایر متخصصین علوم انسانی در ولایت. که دیگه برای آینده کلی رعیم از قدی و سعید جلیلی و اینا بتونن تحویل جامعه بدن خدا بخیر کنه فری غریب سلام چه خبر؟ سلام سلام به همه گی فارسی مخصوصا سلام به اون شنمنده عزیزی که از اون تو برف واسمون بوغم زد <تصفح> خبر نزدیک به موضوع برنامه شروع کنم مهدی تارمی مهاجم ملی پوش پرسپولیس گفته بعد از خراب کردن پنالتی در بازی مقابل نفت تو دوازده ساعت 14000 تا کامنت داشته تو فضای مجازی که بیشترشون خوش و ناسزا به خودش و خانواده‌اش گفته بودن و خود آقای تارمی هم گفته که همه چی رو تو فضای مجازی تعطیل کرده. قجفری بود زیاد هم پارسال بود انگار کار برای ایرانی تو فضای مجازی کلی از خجالت مسی درمدن. آره متاسفانه تو جام جهانی برزیل بود. امروز هم یه خبر اومده که فرشید ماموران یه نهاد امنیتی ریختن تو دفتر علیه کپاشیان و کلی مدارک و و حتی دلار رو هر چی رو میز تو بوده با خودشون واسه تحقیقات بردن. عجب فکر کنم این سفر هند و عکس پول لباس هندی و اینا بالاخره کار دست کفوشیان داد دیگه. اتفاقا فرشت اون عکس هندی ش هم رو میز بوده. ولی <تصفح> <تصفح> <تصفح> یه خبر صوتی هم داشتیم در سایت ورزش سه اومده مرتضی پورعلیگنجی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در تیم تیانجین چین توپ میزنه در مورد غذاهای لذیذی که تو چین خورده شما فکر کن چلو کباب مثلا اسبایتی اینجوری گفته پیشت نبیمیم چی بود در پونزده اوزی بود یه دفعه رفتم ماکارانی بکشم خب بورتم دیگه آقا رفتم کشنم بوردم خوردم دیدم بوی بد میده یکی سوال کردم گفتم مثلا این چیه چینیه گفت این اسمشو نمیدونست. اینه. گفتم یا حسین مرتضا کلم خوردی. که اون یکی از خاطره های خوبه همیشه تو ذهنم میمونه. کلم خورده بودم. بعد یک دو بارم سوس خوردم که خیلی خوبه. باز خوبه هنوز داره بازی میکنه. من اگه روز ماکارونی بخورم بعد بفهمم کرم بوده، کرم خوردم از همه میادین ورزشی غیر ورزشی سریع قداوضی میکنم به خدا. خبر از ورزش دیگه هم داری برامون فری بورس؟ راستی یه خبرم از ارشن مرادی، استاد بزرگ شطرنج ایران بگن که تو آخرین رنگینگ که شطرنج بازان جهان اسمش از زیر پرچم ایران خارج شده. معمولاً وقتی یک قهرمان در گریشه ورزشی میخواد تغییر تابعیت بده، اسمش میره زیر پرچم فدراسیون جهانی اون ورشته. ارشن مرادی که تو آمریکا سالان داره تحصیل میکنه به ایسنا گفته به دلایل شخصی فعلا نمیتونم واسه یه تیم ایران بازی کنم. ممنونم ازت فریدروز غریب باد می کنیم تا فردا تا فردا yeah. خدا نیزار دارم آقا امروز از این تعلیم و تربیت مدرن کلی حرف زدیم سیستم آموزشی مدارس قدیم تنبیه مهور بود. یادتونه دیگه خیلی آادشونه خونه وادات چون از کتک زدن بچه ها خسته می شدن یا وقت نمیکردن بچه ها می‌فرستادن مکتب خونه که به شکلی جدیدری کتک بخورن آدم شد یعنی چوب و فلک و ترکه جزه ابزار و لوازم اولیه هر مکتب خونه بود بعد حالا نمره س دو تا خطیم وونوررش که سفر صفر... کله گنده معروف شد. این ابزار فشاری شد برای سرکوب کردن و شکل, شکل دادن به شخصیت بچه صفر ولی در دوران مدرن کم کم قضیه کودک کتک و نمره کم رنگ شد و با پادرمیونی جمعی از روانشناسای کودک و تحلیلگرای اجتماعی سیستم تشویق محور جای خودش رو داد بسن. سیستم تنبیه محور و اینجوری شد که الان کلا بچه توی مدرسه همینجوری در حال تشویق شدنه درس می‌خونه تشویق میشه کارت هزار آفرین می‌گیره درس نمی‌خونه بازم تشویق میشه منتها کارت ده آفرین بیشتر بهش نمیدن درس پس نمی‌شینه تو کلاس تشویق میشه انضباطشو خیلی خوب میگیره سر همکلاسیش می‌کنه تو جاکتابی بازم تشویق میشه منتها انضباطشو فقط خوب خالی می‌گیره دیگه خیلی خوب نمی‌گیره حالا این شیوه تربیتی مدرن جواب میده یا نرو باید بی۳ سالی صبر کنیم تا اثراتش رو ببینیم الان دیگه نمیشه قضاوت کرد پیش خوب. روزنامه رسالت از قول پرویز امینی که از چهرهای وابسته به جناح محافظ امروز تیتر زده بود که اصلاح طلبان در حکم آپاندیس دولتند این چه حرفیه من نمیفهمم حالا خوب فرد روزنامه اصلاح طلبم تیتر بزنن محافظ کاران در حکم دولتند. دولتن چرا سر اینجا شوخی باز میکنین آقای روزنامه اقتصاد پویا با چاپ تصویر بزرگی از یک خوشه موز در صفحه اول خود امروز تیت زده بود که در پی شعور شعور نوعی چه خطرناک خداحافظی جهان با موز ای بیداد بی یعنی موزم منقرس شد قضیه جدیه؟ شوخیه؟ چی آقا زن بزنید سردبی روزنامه پیگیری کنین تو رو خدا اگه واقعیت نداشته باشه به خاطر تشویش از هان اومی باید ببندن روزنامه روزنا فرصت برنامه امروزمون هم به پایان رسید به قول ایوام مسیح میخواهم چشمهای من را به قضاوت جاده بگذارم و شهر شما را به قضاوت آسمان حرفی اگر بود تو از تمام وقت با خودت چیزی بگو ابتدا سکوت است شبتون خوش هاتون پر از عشق به هوا هنوزم آشقونه چه تنها شهر و قدم میزنم دیوون وار تو رو صدا میکنم سکوت شهر رو به من میزنم من اشتباهی به تو دل نبستم دل به تو دادم که تو هم بشگنی از هر طرف برم به تو میرسم تویی که آخرین پناه منی هنوزم با اکسا تو بارم تو این کوچه ها را میافتم همیشه تو قلبم میمونی این تو به هیشگی نگفتم نفس ها مو پای تو میدم چه خندت